بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوع كتاب بيوع وبيع ما ملك من الأعيان الحاضرة جائز إذا رآه المتبايعان قبل إبرام الأقد بفرمايات ومؤاملية أنتك مالك شده است آنچه که در ملکیت است از اعیان حاضر نه از اون چیزایی که حاضر هستند جایز الجائز است مبتدای مبتدا جایزون خبرش. چه زمان اذا راه المتبايعان قبل ابرام العقد زمانی که دیده باشند اون عین رو اون چیز حاضر رو خریدار و فروشنده قبل از بستن قرارداد قبل از قطعی کردن عقد. قبل از ایجاب و قبول اونو دیده باشند و لهما خیار المجلس ما لم یتفرقا و برای آن دوست یعنی متبایان یعنی خریدار و فروشنده و برای آن دوست خیار مجلس تا زمانی که از هم جدا نشده اند یعنی موقعی که قرارداد و بستند و از هم جدا نشده بودند میتونند بر بگردند او یا تخایره را یا اینکه یکی از آن دو اختیار نکرده بود ببینید خیار مجلس هست تا زمانی که از هم جدا نشده باشند یا تا زمانی که یکی از آن دو اختیار نکرده بود این دیگه چی هست در کتاب منهجی میاره و کذالک یسقط الخیار منظور خیار مجلس اذا اختار احدهما او کلاهما ابراهما العقد و لزومهو همچنین ساقت میشه خیار زمانی که برگوزید یکی از آن دو یا هر دوتاشون قطعی کردن عقد رو و لازمیت عقد رو یعنی همونجا که نشستند اگر طلب کردند که عقد قطعی بشه، اون خیار مجلسی رو خدا به اونا داده بود، شاره به اونا داده بود، خواست یکی از اونها که برداشته بشه، میگه با این کار هم خیار مجلس تموم میشه. با سیغه های مثل چی؟ امده این العقد، عقد جاری کردیم او اختر او؟ یا لازمیتش رو برگزیدیم؟ همچنین آورده در فقه منهجی اذا خيّر احدهما الاخر که يقول له اختر امضاء البيع او فسخه. یکی از اون دو دیگری رو اختیار در بش گفت یا معامله رو قطعی کن اجراش بکن یا فسخش کن و دیگری هم با این کار میگه خیار ساقط میشه بله پس به دو حالت خیار مجلس از دست دو طرف میره یکی زمانی که از هم جدا بشند توی ایک اتاق نشستند عقد و بستند یکی رفت بیرون خلاص خیار مجلس دامون شد معامل قطی شد یا اینکه او اویت خایرها یا اینکه اختیار بکند یکی از اندو یا جفتشون قطعی کردن عقد رو که با این کار هم خیار مجلس از بین میره ببین او یتخایر اختियार دارن به چه شک فیتفق الا الامضاء اتفاق کردند آن دو بر اجرایی کردنش قبل از اینکه جدا بشن هم دیگه رو اختیار دارن و اتفاق بر امزا کردن با این کار هم خیار مجلس از از بین میره فانشرقا اگر آن دو شرط گذاشتند خیاره ایامین او یا دونها لهما او لاحدهما جازه جازه جواب شرطه اگر آن دو شرط گذاشتند خیار سروز روز یا کمتر از سروز روز را برای هر دو این خیار را گذاشتند یا لاحدهما یا برای یک جازه جایز است پس اگر اختیار گذاشتند هر دو تا گفتند ببینیم تا دو روز من اختیار دارم این چیز رو نگاش می کنم آیا یا نه آه شرط خیار گذاشتن که من تا دو روز اختیار دارم تا یک روز اختیار دارم تا کمتر از سه روز اختیار دارم میگه اگر این شرط گذاشتند. گذاشتن چه هر دو طرف این شرط گذاشتند. گذاشتن چه یکیشون جازه جایز است ولم تجوزی زیاده تو علیه اما جایز نیست اضافه بر آن یعنی بر سی روز ولمن من له الخيار فسخ العقدی فی زمان خیاری و برای کسی که خیار هست اختیار هست شرط خیار گذاشته بود و من و هست برای کسی که له الخيار برای اوست خیار اختیار فسخ, فسخ کردن عقد درست جمله اینجوری بهتر می بود فسخ العقدی لمن له الخیار و فسخ العقدی یا وجایزون فسخ العقدی لمن من له الخیار فی زمان خیاری خب خلاصه هست برای کسی که حق خیار گذاشته فسخ عقد در اون زمان خیارش اگر دو ساعت گذاشته اگر یک روز گذاشته اگر دو روز گذاشته در اون مدت میتونه معامله رو فسخ بکنه فإن أمسك عن الفسخ حتى انقضى زمان خياره لازمه العقد اگر دست نگاه داشت از فسخ کردن یعنی فسخ نکرد تا اینکه اون زمان اختیارش رد شد اون زمان اختیارش رد شد لازمه العقد عقد برش الزامی میشه دیگه خلاص عقد بسته شده دیگه اختیاری نداره ولم يكن له الفسخ الا بعيب يجده المشتري في او يجده البائع في الثمن ان كان معينا وإن كان غير معين ابدل المعيب ولم يفسخ يا ولم يفسخ حق ولم يكن له الفسخ وحق فسخ ندارد مگر بعيبي كه بيابد آن را مشتري در اون کالا در اون که خرید و فروش شده پس بعد از این که اون مدت تمام شد دیگه اختیار فسخ وجود نداره نمیتونه از معامله بر بگرده مگر این که مشتری عیبی بیابد در اون کالا یا فروشنده در سمن عیبی بیابد خب سمن که همیشه پول نبوده این چیزی بهش فروخته و اون چیزی بهش داده پس اگر خریدار در اون مبی عیبی یافت یا فروشنده در سمن عیبی ای یافت اینجا و نمی تواند فسخ کند مگر زمانی که مشتری ای بیابد در مبی در اون کالا یا بیابد فروشنده بی رو در سمن اگر سمن معین بود اگر سمن چیز معینی بود و کان غیر معین ابدل المعیب اما اگر سمن غیر معین بود اگر سمن اون چیزی که بینوان پول پرداختش کرده غیر معین بود طرف ساعتی رو موبایلی رو فروخته در مقابل یه سمنی و اون سمن تعیین نبوده اینجا دیگه سمن ابداره. عوضش می‌کنن یه باید چیزی مثل خودش ابدل المعیب اون چیز ابدار، سمن ابدار، اونی چیزی که به عنوان عیب پرداخت شده بدل کرده میشه ولم یفسخ و فسخ کرده نمیشه معامله یا ولم یفسخ میشه اینجوری هم گفته ولم یفسخ یعنی و بایه نمیتونه فسخ بکنه عیب چی هست؟ که یکی از خیارهای معاملات هست یعنی طرفه میتونن به وسیله اون به خاطرش بر بگردن کل ما نقصت القیمتو من اجلیهی عیب هر چیزی رو میگند که قیمت به خاطرش کم بشه بسید رنگ در ماشین طرف ماشینی رو فروخته این مبی اما، این کالای فروخته شده اما رنگ شده ایچار خریدار خبر نداشت. اینجا به خاطر این عیب مشتری حق فسخ معامل رو داره ولا و جائز نیست فروش چیزی که غائب است بر شرط خیار دیدن خیار دیدن خب این در فقه در مذہب احناف وجود داره احناف میگن اگه چیزی رو ندیده بود فروختش بعدن که دید حق خیار رویت داره یعنی با دیدنش این اختیار رو داره که فسخ بکنه یا نکنه اما شعافه میگن همچنین چیزی جایز نیست و جایز نیست فروش چیزی که غایب است بر خیار دیدن بر اختیار دیدن یعنی بعد از اینکه که اونو دید و اختیاری داشته باشه میگنه همچنین اختیاری وجود نداره پس این جایز نیست نمیتونه میگه طرف چیزی رو بفروشه و بهش بگه خیار رویت داری ولا يجوز بی اعین غائبتن علا خیار رویت و جائز نیست فروش چیزی غائب بر خیار رویت چون چیزی جائز نیست میکن ولا بی او مالم یخلاق و به چیزی که بوجود نیومده ولا انیبی امیل که غیرهی علا اجازتهی و جائز نیست که بفروشد ملک شخصی دیگر را بر اجازه و جائز نیست بفروشد ملک کسی دیگر را بر اجازه اش ولا ان يَشْتَرِيَ لَهُ بغير اذنه عَلَى اِمْضَائِهِ وَنَا این که بخرت برای کسی دیگر بدون اذن بر امضاش يعني یعنی اون شخصی که براش خریده اذن بر امضا اگر هم نده باز هم نمیتونه براش چیزی بخره خب این به افضولی هست معروب در کتب فقیبش میگن میگه در مذهب امام شافعی رحمت الله علیه میگه ولا ان یبیع ملک غیره الا اجازهت نمیتونه بفروشه ملک کسی دیگر رو بر اجازهش اجازه و اذن فرقشون در چی هست اینا دو تا اصطلاح فقهی هستند در فقه کاربورد دارند ازن رخصتی هست برای انجام کار قبل از انجام اون کار شخصی میخواد برای شما کاری انجام بده قبل از انجام کار اجازه میگیره این میگند اذن. اما اجازه نه اجازه رخصتی هست در کار بعد از ایقاش شخصی رفته برای شما کاری رو انجام داده خب بعد از این که انجامش داده شما بهش اجازه میدی اینو میگن اجازه اما اذن قبل از انجام کاره، بایره پس بیایم روی همین جمله خودمون میگه نمیتونه که بفروشه ملک کسی دیگر رو بر اجازهش بر این چیز که بعدنش طرف بیاد و ازنش بده چون مال مالش نبوده تا بیاد اونو بفروشه اینو بعضی از فقه ها جائز میتونند. یعنی رفت برای طرف چیزی رو فروخت بعدن طرف هم که خبر شد رخصت داد اجازه داد بعضی از فقه ها میگند موردی گند ندارد ولی موقوفه بر اجازه هست اما شافه میگن نه این کارو نکنه و همچنین نخرد و همچنین نخرد برای شخص دیگر بدون ازن بر امضاء اینجا فرم میکنه در خریدن رفته برای شخص چیزی رو خریده اگر اون شخص ازن بر امضای اون کار داد که اون کار عملی بشه اینجا دیگه موردی ندارد اما در فروش نه پس هو نمی تواند که بخرد برای شخص دیگر چیزی رو بدون اذن بر امضا. ولا يجوز باعث ثياب في فی الصفات و جائز نیست فروش لباس در جامدان در سبده جامع دیده نمیشه. حتی اون شرک کل رو ثابت می‌ندازند تا اینکه هر لباسی که در اون جامدانه بیاد و پخش بشه ترفورد ببینه. ولا يجوز به ما تحت الرض من بصلن او جذرن حتی يقلع لا و جایز نیست فروشان چه که زیر زمین هست از پیاز یا زردک همون هویج حتی یقلت تا اینکه کند بشه ججه حالت درش هست ولا بظری الرض و هم همچنین به بعضزار در زمین جائز نیست ولا بيع اللبن في الدرع وهمتنين فروش الشير در پستان جائز نیست. كهانوز دوشی دنه شده ولا الحمل في الباطل وهمتنين فروش جنين در شكم هذا هو داره در شكم جنين هست بق حملي هست لم يتونين بفروش طابد ريانا يعمده ولا ما جهل قدره أو صفته من مبيء أو ثمن وهمتنين جائز نیست. فروشان چه که اندازش در اندازش جهالت هست اندازش معلوم نیست یا صفتش معلوم نیست چه مبی باشه اون چه سمن باشه تا زمانی که اندازش صفتش معلوم نباشه جایز نیست ولا بیع لا يقدر على تسليمه من ابق او مخصوب و همچنین جایز نیست اون چیزی که توانی بر تحویل آن نیست از جمله برده ای که فرار کرده است یا چیزی که غصب شده است توان تحویل دادنش به خریدار نیست این هم فروشش جایز نیست ویجوز باء القطن فی اعداله جایز فروش پنبه در اون ظرفش آ کیسه بزرگش اعدال همون کسی های بزرگ رو میدند ویجوز و جائز است فروش پنبه در اعدال در ظرف بزرگش وزیتو فی ظروفه و روغن زیتون در زرفش اذا شوهد بعضه زمانی که قسمتی از آن مشاهده بشه طرف اونا رو ببینه ولا يجوز بيع الاعيان و وجائز نیست فروش چیزهایی که ذاتهایی که نجسن در پاورقی آورده مانند سگ و خنزیر و فضله و مردار و شراب در این میان فقای احناف فروش سگو رو که برای نگهبانی باشه جایز دونست اما جمهور نه خب احناف حقیقتا در قسمت معاملات واقعا شاهکار دارند ولا بيع ما لا منفعت فيه من السباع والهوام چون اون نف ایدارش خست از زاویه نجس بودنش نه از زاویه ن بردن وا کجا رسیدیم؟ وا به اوماللا منفعت فيه من السباع والحوام و هم این جایز نیست فروشه؟ اون چیزایی که درشون منفعت نیست از درنده ها و حوام جنبنده های زهردار مثل اقرب مثل مار و یک ای که این فقه نیازه به روز رسانی داره اینه که خب مثلا در زمان قدیم اون تکنولوژیک از اینا نفع و ببرند وجود نداشت ولی الان مثلا از مار قاد زهر می از اقرب خیلی چیزای گران قیمت می گیرند اصلا در تکنولوژی در ساخت رزی چیزها و تکنولوژی روز کاربورد دارند آیا واقعا باز هم اون ممنوعیت هست درش فقهای های قدیم خوبی که داشتن وسعت نظر داشتن اصلا شما موقع که فقه،, فقه های ارای مخصوصا فقه اهناف بعدش مالکیه بعد شافعیه رو باز میکنید متوجه میشید خیلی از مسائلو در حدیث مطلق اومده در نصوص مطلق اومده ولی اینا اومدن براش مقصد آوردن میگن اگر به این دلیل باشه میبینی در نص اومده چیزی مطلقاً نه اومده ولی فقهای بزرگوار اومدن براش علت آوردن اگر این علت موجود بود اون موقع ممنوع میشه مثلا بعنوان مثال میگه اگر جمعه طرف برای نمازش ضعیف شد یا برای فلان چیز فلان شد کاری ندارم که نظر درست یا اجتحاد درست کاری نه ولی بحث روی منهج اعیمه بزرگوار هست که مقصدگرا بودند علل احکام براشون مهم بوده خیلی از احکاماتی که خوب اون زمان مبنی بر مسلحت، مسلحتی مصلحتی بودن که اون مصلحت تغییر کرده یا مبنی بر یک مظریه بودن که تغییر کرده یا مبنی بر عرفی بودن که اون عرف تغییر کرده لذا این می که طرفداران فقهای بزرگوار با دیدی باز با روششون کار بکنن با قواعدشون تا اینکه روی نظریات تعرضه خشک داشته باشه اینجا خودش داره میگه میگه ولا به اونوالا منفعت فیه اون چیزی که درش منفعت نیست جائز نیست و این خب الان با تکنولوژی ها امروز درش خیلی اتفاقا منفعت هست یک اقرب با کلی قیمت میخرند ولا عصب الفحل و همچنین کرای دادن فحل یا به مزدادن نرینه اینو هم فقه ها نمیدونن به خاطر این که درش جهالت میدونن خب چه اندازه اونجا پیش طرف باشه چه اندازه نف... نباشه باز هم اینجا یک بروز رسانی اگر اشاره بکنیم اصلا امروز برای آبستن و حامل کردن گاف اصلا نیازی به نرینه نیست طرف میره یک واکسنی رو میخره بهش تزریق میکنه با قیمتی خودش باردار میشه اینجا البته یکی میتونه بیاد این شبه رو بیاره که اصلا این جائز هست یا نه خب این دیگه مال اونیه که روی مقاصد و اهداف شریعت اصلا کار نمیکنه. هدف در حیوانات تکثیر نسله چون اینا برای انسانی خلق شده اند که اون انسان رب العالمین رو عبادت بکنه وسائل دیگه هست که ما فعلا بحث و طولان نمی کنیم در هر صورت اگر به جای درگیری های جزئی این به رسانی های فقه انجام می شد بهتر می بود ولا ضربت الغائس و جائز نیست هم بربت الغائس غائس از غاوس میاد یعنی فرو رفتن در آب اسم فائله میگه این جایز نیست که شخص به شخصی دیگر بگه من غواصی میکنم برای تو در دریا هرچی که در این غواصیم گیرم اومد برای توست بیم قدر قیمت خب این جهالت درش هست تو برو تو بکن چیزی گیرت اومد بعدن بیا بیرون ارزشش چقدر بود بفروشش اما از قبل این کارو کردن جایز نیست پس جایز نیست که شخص به دیگری بگه برات غوازی کنم در دریا هرچی گیرم اومد به این اندازه مال توست ولا لا یجوزو بیعو ثمر حب حتی یبدو صلاحوها الا به شرط القطعی و جایز نیست فروش سمره تا صلاح آن آشکار و ظاهر بشه بله یعنی زرد شده باشه قابل خوردن باشه از آفت در امان باشه اما قبل از امان در آفت اگر تباه شد خب اون موقع پولی که از خریدار گرفته در مقابل چی چیزیه؟ بله پس جایز نیست فروشه میوه تا این که صلاح آن آشکار بشه از آفت در عمال بشه الا بشرط اگر مگر بشرط چیدن اگر بشرط چیدن باشه که قبل صلاح جایزه و لا بیع الزرعی اذا کان بقلا الا بشرط الجز و هم جائز نیست فروش زرع زمانی که هنوز سبز مگر به شرط دروش چیدنش چون اینجا دیگه میگه اون احتمال آفت بیاد اینو بزنه وجود نداره رخص اینو خریده که بچیندش فورا ولا به اطاامی فی سنبل حتی يصفى وجائز جائز نصفروش غندم در سنبول در خوشه تا انك پاک بشه ولا بيء ما عليه قشرتان حتى يخرج من العليا التي لا يدخر بها إلا أن يكون راتبا قد يؤكل بقشرته, بقشرته كاللوز والباقل لا فيجوز بيءه فيهما بله این جمله تا یکی بود میگه همتون این جایز نیست فروش یا معامله آنچه که دارای دو پوسه تا این که از پوست بالاییش که درش ذخیره نمیشه خارج کرده بشه مگر اینکه تر باشه و با هر دو پوست خورده بشه در این صورت اشکالی نداره مانند بادام و باقلا بله باقلا دو پوست داره اگر خشک شد میفرماید جایز نیست فروشش، معامله‌اش مگر این که از اون پوست بالایش بیرون کرده بشه. اما اگر تر بود اینجا با هر دو پوست جایز که فرو، فروخته بشه، معامله بشه. چرا؟ چون اینجا دیگه با هر دو پوستش خورده میشه. بله. پس جایز نیست که داره دو پوست، تا زمانی که از پوست بالایی خارج بشه، اون پوستی که درون پوست ذخیره نمیشه. مگر اینکه تر باشه. که با هر دو پوست قابل خوردن باشه که در این صورت ایرادی نداره با هر دو پوست فروخته بشه مانند بادام و باقلّا فیجوز و به اوهو فیهیما جائز است فروش باقلّا و باقلّا و بادام در هر دو پوست زمانی که با هر دو پوست خورده میشه یه زمانی که هنوز تره اما اگر خوشک شد اون موقع با هر دو پوست خورده نمیشه والمغرب پوست بالاش باید دیگه خارج بشه بله ولا يجوز بيع ما اشتراه او استوهبه الا بعد قبضی من بائه با و واهبيه وجائز لنس فروشان چه که خریده است انرا یا آن را یا بخشیدن به او چیزی رو مگر بعد از قبض مگر بعد از تحویل گرفتن از فروشنده یا بخشنده بله بگه اگه چیزی رو خرید یا کسی بهش داد یک چیزی نمیتونه اینو بفروشه مگر اینکه که از اون فروشنده یا از اون بخشنده واحد اونو تحویل بگیره قبضش بکنه و يجوز بيع ما وریفه قبل قبضه اما جایز فروش آنچه که اونو به ارث برده قبل از قبضش در ارث فرق قائل شده عرص خودشو قبل از قبض میتونه بفروشه. و بيع ما اقرازه او اعاره قبل استرجاعه و همچنین جائز فروش اون چیزی که قرضیش داده یا آریش داده قبل از تحویل گرفتنش قبل از بازگردوندنش فرغونی رو داده میگه که آریه میگه قبل از بازگردوندن میتونه اینو بفروشه اما اگر چیزی رو خریده بود قبل از تحویل گرفتن نمیتواند آن رو بفروشد